بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وآخرة النبيين وآلِهِ وصحبه أجمعين أما بعد الله أسماه وشما قبول بكوني سفيرا مُنِباعين قدم هاي كدريم بارم كدريم بسويه. درخس بخششة الله جل وعلا بس على زمین أعرفه فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه ان هو التواب الرحيم فتلقى آدم ربي كلمات الله جل وعلا توبة آدم حوار مي بجزيرة بعد صونش توه هاي كدريم بهشت أنجم دادنا. اون میوه میوهی که نباید میخوردن خوردند معصیت الله را انجام دادن اون گناه را مرتکب شدن و از بهشت الله رانده شدن و به زمین فرساده شدن الله توبه پذیره توبه بندگانش رو الله جل و علا میپذیره و به خاطر همینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماین حج مبرور پاداشی جز بهش نداره حج مبرور کسی که الله ازش بپذیره حجش رو اون قدمهایی که داره بر میداره با جان و تن اومده با مالش هزینه کرده اومده به این سرزمین در این سرزمین ایستاده اون شخصی که توبه‌اش را الله بپذیره در اون روز برمیگرده چنانچه مادرش او را یعنی هیچ گناهی در پرونده اعمالش باقی نمون الله محبش میکنه انگار که تازه به دنیا اومده پاک که هیچ گناهی در پروندش نباشه این فضیلت حج فضیلت حجی که مورد قبول باشه و ما باید تلاشمون به این باشه یعنی تلاشمون چنان باشه که آدم تلاش کرد تا اینکه الله ازش پذیرفت و توش رو ازش قبول کردبات ما این قدم هایی که برمی داریم هدفمون این باشه نه اینکه هدفمون دنیا باشه اومد این روبره خاان خدا بکنیم نه ما مریزی مادرمان مریض فلانی پاش درد میکنه فری سرش در میکنه کنان زننی داره مشکل مالی داره مشکل فوننیی داره نه هم دنیا رو داشتن این هم فقط روزی زندگیمون رو داشتن این مثلا و مراد نیست این زندگی پایدار نیست ماندنی نیست ماندگار نیست این سرا و این جا و زندگی ما دار فانیه ما الوداع میگیم امروز نباشه فرداست معلوم نیست که دیگه بعد از این حج فرصتی برای توبه پیدا بکنیم یا نه اون سرای جاویدان بیشتر اشت عبدی و برین الله جل و علا هست باید به فکر روز آخرت بکنیم اون روزی که در صحنه محشر ما جلوه الله جل و علا میستیم ما باید به اون روز خودم رو آماده بکنیم اینجا برای من و شما ایستادن در تواف و راه رفتن یا در سرزمین عرف ایستادن و رفتن به جمرات اینجا برای من ایستادنش والله آسونه والله سخنیست رفتن از اینجا به حرم والله سخنیست شما باید اون روزی بیاد بیارید که در سرزمین محشر از قبر لخت و بیرون اومدیم هممون همه در سرزمین محشر حاضر میشیم لخت و لباسی بر تن نداریم جامعه ورتن من نیست دنبال پناهگاهی میگردیم یک جایی بش پناه بیاریم هر پیامبری برای خودش حوزی داره که اطباع اون پیامبران وارد حوزه پیامبرشون میشن کسانی از اون حوض ها رانده میشن حوض الصخر آب که از بهشت از رود کوسر در اون سرازیر میشه تعداد کاسه های اون به تعداد ستارگان آسمان آبش از آب زلالتر و از اصل شیرینتره کسی بینوشه هیچ وقت تشنه نمیشه رسول الله صلی علیه و وسلم میگه دیدم کسانی از حوز من رانده شدن گفتن اینها امت تو نیستن کسانی که در ظاهر مسلمانن ما باید به فکر اون روز باشیم که از اون حوز رانده نشیم در اون صحنه در اون. روز رستاخیز رو سفید باشین پرونده به دست راسمون بدن اونجا ایستادنش سخته اونجایی که خورشید فرق سر ما هست و مردم در عرق خودشون غرقن کسی تا ساق پاشو کسی تا زانوهاشو کسی دیگر تا نافش و تا سینه اینا در عرق خودشون غرقن و عذاب میبینن در اون روز یعنی قبل از این که وارد جهنم بشن در جهنم عذاب ببینن در سرزمین محشر عذاب میبینن غل و زنجیر به گردن مجرمین تبهکاران، کفار، مشتکی میاندازه الله جل و علا از اون صحنه به سختیات میکنه الله جل و علا در قرآن میبیند و اید الاغلال في اعناقیم و يسحبون. اون روز مجرمین، تبهکاران، گناهکاران، کفار، مشرکین الله جل على دستور میدهد به فرشتگانش که زنجیر به گردنشون بیاندازید قف بکنید و اید الاغلال و فی اعناقیم اغلال غل قفل و زنجیره به گردنشون بیاندازید و سلاسل. زنجیره کشون کشون میکشند در اون سرزمین به سر و صورت خودشون سخت بس میکنه الله جل و علا از اون سحنه محشری که هولناکه مزید. که انسان باید به اون روز خودش رو آماده بکنه و اصل کل اون مطالبی که اون جایگاه هایی که ما درش می ایستیم ما رو بیاد اون روز می اندازه حج خصوصا بهش میگن حج اکبر حج اکبر چون بعضی ها اطلاق میکنن بر عمره هم کلمه حج بقید همین تفاوت که گذاشته میشه بین حج و این حج این اون عمره و این حج در اینی که ما اینجا عرفه داریم اونجا نداریم حالا بعضیا فکر میکنن حج اکبر حجی که روز عرفش در در روز جمعه واقع بشه چنانچه حج رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده نه هیچ چیزی ما نداریم که اسمی در شهر بیاد که حج اکبری داشته باشیم غیر از اون حج که ما داریم انجام میدیم بله درسته فضیلت اون روزی که روز عرفه در روز جمعه واقع بشه فضیلتش از این که در غیر از روز جمعه باشه بیشتره چرا ما اون دو تا عید داریم روز عرفه که وقت اجابت دعا و روز جمعه که وقت اجابت دعا است این دو تا اجابت دعا داریم آخرین ساعت روز جمعه که وقت اجابت دعا است را صد حدیث عبدالله بن سلام و حدیث جابر داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله می روز جمعه یک ساعتی است که درش دعا اجابت میشه و اونم اخرین ساعت روز جمعه است علاوه بر این میگن بین دو تا خطبه است که حدیثش ضعیفه صحیح اینه یعنی که در دو تا از احادیث ما داریم از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله که با سند صحیح روایت هست اینکه ساعت اجابت دعا در روز جمعه اخرین ساعت روز جمعه است پس این برتری حجی هست که روز عرفه در روز جمعه واقع بشه. الله جل و علا در قرآن به این ده روز ای که ما مناسک حجمون رو درش انجام میدیم قسم یاد میکنه. الله به یک چیزی که بزرگ نباشه قسم یاد نمیکنه. الله در قرآن میفرمهد و فجر و لیال عشر. والفاجل قسم قبل صبح صبحا میخوره الله جل وعلا بعد به ده روز ذلحجه چنانچه جمهور مفسره میگن الله داره قسم یاد میکنه به این روزها که بهترین روزها نزد الله جل وعلا و ما این را در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم که خواهیم خوند که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمايان هیچ عمل صالحی نزد الله محبوب تر از عمل صالح در این روز نیست حالا ان شاء حدیثو مرور خواهیم کرد حجه ما به دیدار با خانه الله توافمون چرخشمون دور خانه خدا هست اونجا اون, اون سرزمینی که محبوب الله به خاطر این عبادت شریفی که انجام میشه شریف این عبادت شریف این عبادتی که ما داریم انجام میدیم از تواف که جزء ارکان حج غیر از عرفه تواف افازه داریم که جزء ارکان حج من من کامل نمیشه جز با رفتن به, به تواف افازه و سعی صفا مروه الله جل و علا این سرزمین رو مقدس قرار داده الله جل و علا ابراهیم رو دستور میده که این کعبه را بسازه و دورش به چرخه چرخش دور این خانه در روی زمین هیچ جا ندارید جز اینجا یعنی جایی نمیبینید که دور خانه بچرخن به عنوان یک تاعت یک عبادت جز در این مکه شما دارید این عبادت و رسول الله صلی الله علیه و سلم از فضیلت این چرخش یاد میکنه که میفرمایند کسی هفت دور دور خانه خدا بچرخه هفت دور طواف بکنه دور کرد نماز پس از اون بخونه انگار بردی را آزاد کرده فضیلت کمیه اینها فضیلت های بسیار بزرگ توافه که الله جل و علا این فضیلتا و ثواب ها را قرار داده برای ماها چنانچه ما در احادیث متعددی داریم مثلا از جمله احادیثی که داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم این سلام ها یحط الخطایا یعنی با اون چرخش دور خانه خدا با هر چرخش تو با هر تکبیر گفتن بعد از حجر الاسود که دست بالا میکنیم یه الله اکبر نه مثل بعضی که هی بوسی می و می گیسن دو نه نه فقط یک اشاره کافیه با همون تک گفتنت رسول الله صلی الله علیه و سلام می فرمایان گناهانت کفاره میشه یحطو الخطایا گناهانت بخشیده میشه با اون توافت چنانچه در این حدیث داشتیم حدیث امام احمد و امام نسائی از عبدالله ابن عمر روایت میکنه و حدیثش صحیحه در حدیث دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلام می من طاف اسبوعا یحسیه و صلی رکعتین را له رقبه دور دور خونی خدا بچرخه دور کد نماز إنقار برديرا آزاد کرده ودر روايتي يقول <سؤال> ما رفع رجل <سؤال> قدما ولا وضعها إلا كتبت له عشر حسنات يك قدم بار نمي دوري در توافت دهتا حسنا وراد نمشت مشه وحط عنه عشتا سياد دهتا قناه هزش باك مشه ورفع له عشر درجات در بهشتم دهتا رتبه بهش أفزوده مشه ودر روايتي ديگر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنات گناهانش بخشیده میشه و ده تا حسنه بهش اضافه میشه خب این ها فضیلت های توافه الله ما را بهش مختص کرده ما را انتخاب کرده به سرزمینش من و تو الله انتخابمون کرده توفیقمون داده که بیام لیاقت را در ما ما رو خواسته که بیان همه کس این توفیق رو نداره همه کس الله را نخواسته که بیاد بی اینجا در این سرزمینش بیس دور خانش بچرخه وقتی که ما میدونیم الله ما را انتخاب کرده داریم اتمام حجت میشیم نباید ما پاسش بداریم نباید ما قدرش رو بدونیم والله ازمون همت میخواد که قدر این روزها رو بدونیم قدر این انتخاب و این لیاقته رو باید ما کسب کنیم لیاقته به ما عطا نمیشه الله فندگانش رو اتمام حجت میکنه ما باید کسب لیاقت بکنیم ما آمدیم برای کسب لیاقت ما آمدیم که آدم بشیم مثل پدرمون. که توبه کرد الله و پذیروف ما اومدیم که اقرار به گناهمون بکنیم ما اومدیم که اقرار به تقصیرمون بکنیم درگاه الهی که بنده شاکری بودیم بنده دنیا بودیم بنده پول بودیم بنده زن و بچه بودیم بنده آب و غذا بودیم نه بنده عبادت و پرستش نه بنده سجده و تهجد و سر به سجده گذاشتن شعیره حج برای اینه برای بندگی است ما یادات بگیریم از آدم از ابراهیم علیه الکریم الرحمن که ان الله تک تک اینها رو من سعی در اون جایگاه هایی که پیانبران الله جل و علا ایست دادن ما بیستیم و به اون نکات تشاره بکنیم احرامه شما احرام پوشید چرا احرام پوشید؟ فلسفه این احرام چیه حکمتش چیه چرا ما باید احرام پوشید ؟ احرام شما را بیاده چی میندازه؟ دو تا پارچه سفید چه به کمر و خلاق زنان مامرا پارچه دور کمرمون پارچه روی دوشمون رو شما رو بیاد چی میازه برای چی خودتون آماده می غسل قاصی می زنید ختونم پاک قشنگ تمیز می کنید و بعد احرام می پوشید. احرام دارید بعد از غسل احرام دیگه همه چیز رو بر خودتون حرام میکنه از همسر بعد از لببه گفتن همسر رو حرام می کنید و ال آخر از کشتن سید رو سرزمین, سرزمین آزادی احرام یعنی تسلمیم امر الهی اجازه نداری پرنده رو بکشی آزار بدی. اجازه نداری درختی رو بکنی، الفی را از زمین بکنی، بوته ای را از زمین مکه بلند بکنی، سرزمین حرامه، الله حرام کرده این سرزمین، خب این سرزمین مقدسیه، چرا؟ ما را بیاد چه میندازه قضیه؟ ما را بیاد قبر میندازه ما را بیاد سرزمین محشر میندازه ما را بیاد اون لحظه میندازه که غسال در غصال خونه ما را گذاشته روی سکو گذاشته آب را بر میداره روی دستش اون طرف میپاشه سرش می‌شوره و شانه اش می‌شوره از دست راست شروع می‌کنه بعد دست چپش می‌شوره کمرش رو پایین رو بالا می‌کنه که از بدنش اگر چیزی هست خارج بشه بعد دوره کفنی اون رو بعد صدا میزنه بیایید پسرش بیاد محارمش اون زن بیان بلندش بکنن رو دوش میذارن صداشون داره میشنبه ولی نمیتونه جواب بده جسده میتونست جواب بده ولی الان دیگه فرصت جواب دادن نداره روی دوش حملش میکنن میبرن میذارن جلوه نمازگذاران گذاشته میشه امام بیاد میبیاد الله اکبر تسلیم تا این ها استادیوم داریم تکبیر میگیم الفاتحه الحمد لله رب العالمين تکبیر دیگر اللهم صل على محمد تکبیر دیگر اللهم اغفر له وارحمه خدا افسیه رفتیم رفتنیم کی هست که ماندلی و ماندگاری در این دنیا حنمو رفتنیم ما را میذارن اونجا و بر ما نمازی میگن تکبیراتی که تموم شد السلام علیکم و رحمت الله البداح بلندش بکنید ببرید تو قبرستون تون گورش بذارید خاک را میپوشن بر سر ما خاک که پاشیدن روح دوباره به قبر ما باز میگرده زنده میشیم منکر و نکیر میان روی سر ما مییسر بلند شو بلند شو که اینجا جای سوال فتنه است یکی از دعاهایی که ما داریم وقتی که ما در قبر زنده میشیم دعایی که ما داریم برای امورده باید بکنیم چیه دعای ثباته دعای ثابت قدمیه که الله جل در قرآن یاد میکنه یثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت این قول ثابت جواب منکر و نکیر رو درست داده نگیم ها ها نمیدونیم من رب بک نمیدونیم ما دینو که نمیدونیم نمیدونه هیچ اصلا نماز سی همینطوری نماز سرسری خونده رفته روزی هم سرسری گرفت یک عادتی بوده غذایی نخورده و شام شده و رفته سرزری بوده نفهمیده حقیقته عبادت چی بگه؟ بگه دینم اسلامه؟ بگه من مثل ابراهیم تواف کردم مثل ابراهیم سرزمین عرفی استادم سنگ به جمرات زدم اینها باید انسان جلو چش خودش بیاره باید آماده باشه اون لحظهی که منکر و نکی میگن بشین یاتیه ملاکانی اسودان ازرقان اصلا اسم سختی ند میکنه دو تا فرشته میان سخت با چهره اله الله با چهره سیاه رنگ و آبی رنگ انسان وحشت زده میشه وقتی که منکر و نکیر رو میبینهن اومدان میپرسن ازش میگه بشینی روح دوباره به قبلش برمیگرده زنده میشه با جان و روحش نه اینکه فقط جسمش زنده بشه نه جان و روح دوباره تو زنده میشی همین جسم همین روحی که الان دارید باش قدم میزنی اونجا زنده میشه تو قبر چطور نمیدونیم اله برزخی جا برای نشاستن نیست عالم برزخیه مگر این دنیا همانطور که ما در شکه مادر بودیم عالم دیگر بود در اون قبرمون هم عالم دیگره. این کفن یعنی به اون روز خودت آماده کردن این کفن یعنی که آقا تو از دنیا با خودت چیزی نمیبری اونی که برات میمونه تو اون قبرت عملته به فکر عمل باش عمله برای اون روز به فکر پاسخ منکر نکی رو دادن باید گون با صحنه رو به اون روز خودت آماده بکنی ما احرام رو اون که می‌بندیم بعد از اینکه غسلمون رو به میخواد که میرسیم میگیم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شريك لك لک لبیک ان الحمد والنعمته لك والملك لا شريك لك درست؟ لبیک اللهم لبیک یعنی چی لبیک؟ یعنی بار الله از من خاصی که من بیام دور خاند بچرخم منم لبیک گویان اومدم منم با سر و چشم اومدم منم سراسیمه دارم میام به اون جایی که مرا فراخوندی فراخوندی که من بیام دور خانت بچرخم منم با این لب گویان میام بار دور خانت میچرخم فقط مجرد یک ادعا نیست یعنی بندهی ای که این لبیک را میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا لب لب شریک لکه لبیک فقط مجردی یک سخن نیست بلکه عملم هست. وقتی که انسان میاد دور خانه الله جلل علا میچرخه از اون ابتدایی که وارد حرم میشه. اون لحظه ای که خانه خدا را میبینه. اون ابوحتی که از خانه خدا در دل انسان میاد. از عظمت الله و از عظمت خلقش این همه خلق الله جمع شدن دور خانه خدا الله اونها را جمع کرده از طائفه ای از ملتی از نژادی از مشرق از مغرب زمین از شمال و جنوب زمین از اون آفریقاش، از اون اروپاش از اون چینو. مالزی و اندونزی شرق و غرب جهان اسلام شما انسانی نمیبینید مگر که اینجا داره طواف میکنه و دست به دعا و ابتهال برداشته بار الها ببخشمون بار الها اومدیم برای بندگیت این مظهر بندگیه مظهر این که بار توی خدای یکتا توی خالق آفریدگار یکتا اومدیم با اقرار یگانگیت لبک یعنی اقرار به یگانگی الله جل و علا بار الله تو فقط دیگه به حق پراستیده میشی هیچ کسی جسم و حق پرستش و صدا زدن و ذلت و خاری و سر به سجده هادن و طلب و درخواست نیست نرفتیم سر قبری بیستیم سر مزاری بیستیم حاجتی را از ولی بخواهید نه حاجت را اینجا اومدی مستقیم از الله یک تا بخواهید نه من و تو کل اون خلقی که جمع شدن دارن میچرخن والله جز از الله طلب نمی کنه جز برای الله برای کسی دیگر تنبی زلت ندادن فقط برای الله اومدن اینجا ایستادن فقط برای الله اینجا اومدن که الله را مستقیما صدا بزنن بار الله اگر تو عفو نکنی رو عفو میکنه صاحب عفو توی صاحب بخشش توی صاحب رحمت توی صاحب مغفرت توی اگر تو مون را نبخشی نیابرزی بار الله کی ما رو میبقشه تو صاحب مای ما ما در نماز و میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الله مالک مالک روز آخرت هست و این دنیا هم هست. الله مالک و صاحب من و است ما اینجا اومدیم برای اقرار به این مالکیت الهی به نسبت ما خودمون بار الله تو مالک ما این تو از ما خواستی که ما بیادیم اینجا بیست این بچرخی مولی داریم میچرخیم ما برای تو اومدیم همه خلق خدا این دارن میگن هرچند که بعضی ها شاید مشرق و مغرب زمین شاید به انحراف کشیده بشد در غیرت الله را شاید بزنن ولی اینجا وقتی که انسان لبیک میگه دیگه در هر ولی اراده خودش میپنده و بر خودش حرام میکنه و هیچ کسی جز الله براش عزیز نمیشه عزت فقط برای الله لبیک اللهم لبیک فقط لبیک به سوی تو میگیم بار الها فقط از تو مدد میخواهیم فقط از تو یاری میخواهیم فقط از تو کمک میخواهیم فقط رحمت تو میخواهیم لبیک اللهم لبیک این لبیک این معنای لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لبیک شریکی نداری برای هیچ کسی بار لبیک نمیگیم جز برای تو لبيك ما فقط برای الله جل والا برای الله اومدیم برای هیچ کسی نمیدیم اینجا نمیدیم که پول به دست بیاریم اینجا نمیدیم که مقام به دست بیاریم شهرت به دست بیاریم فقط اومدیم که باره الله بگیم تو خالق تایی تو یک تایی اون چیزی که تو بگی باید بشه اون چیزی که تو از ما خاصی باید بشه نه اون چیزی که ما از خودمون میخوایم نه آن چیزی که دیگران از ما میخوان نه خالق و مالک ما تویی باره الله تو برام تصمیم میگیری احرام قدم برمیداریم زنته نمیتونی ببوسیش. نمیتونی حرف محبت آمیز بهش بزنی. خسمت دشمنت نمیتونی بهش ناسزا بگی. فحش بگی. فلا رفتا ولا فسوقا ولا جدال فلحج. نمیتونی با کسی بحث بکنی. عصبی هستی. تنمزاج هستی. اینجا دیگه تنمزاجی معنا نداره. حجت مقبول و مبرور نمیشه. خودت زرار کردی. اینجا اومدی لبیگ گفتی. اینجا اومدی الله از تو خواسته که دیگه اون بحث و جدا رو کنار بذاری دووار رو کنار بذاری. حرف تو و عاشقه و شهوت و هوا و رو کنار بذاری این سرزمین سرزمین متفاوتیه اینجا جای دیگر است الله تو را خسته تو را صدا زده از تو خاصه که در این سرزمین بیBC و در مقابل این ایستادن برات دستور عملی قرار داده این دستور عمل در در این سرزمین حرام. این سرزمین سرزمین حرامیه. مثل نماز فرق نمی کنه. نمازی که ما میویسی وقتی که میگیم الله اکبر، بارله ها تو بزرگترینی بارله الله اکبر. با الله اکبرت چی میشه؟ غذا بر تو حرام میشه. سخن بر تو حرام میشه. دنیا رو بر خودت حرام می‌کنی. الله اکبر تسلیم به درگاه الهی میویسی. لبه‌ای که تم همینه. همون جایگاه تکبیر نماز رو داره. لبه‌ای که گفتی دیگه تمام شد. دیگه تو اون انسان سابق میسی. اون انسان ادعایی و مزاج و پرخوشگر نمیدونم حواس‌باز و دیگه اون انسان نباید باشی. اینجا اومد برای تغییر برای اصلاح و اشتباهات لبیک گفتیم ما هم اومون نشاست سفار اوتوبوس شدیم اومدین وارد حرم شدیم خانه خدا رو دیدیم دور خانه خدا با محبت میچرخیم از دل میچرخیم مادر وقتی که بچه‌اش مریض میشه چی به بچه‌اش میگه میگه مادر دورت بچرخم یعنی که مادر دورت دو چرخم محبتش داره ابراز محبت میکنه دور بچه‌ش میقواد به چرخه محبتی که داره علاقه ای که نسبت به فرزندش داره اینجا تو اومدید برای خودت بچرخی الان تو هم مغم به خودت بود باشه هم مغم کفاره گناه دورخانه خدا داری میچرخی اگر اونجا دل میسوزونی فرزندت الان دل بسیزون برای خودت والله من و تو محتاجی والله اگر الله من و نبخشه کی رو ببخشه چطور گریم خودمون از جهنم در بکشیم چطور گریم خودمون درون اون درون در اون که منکر و نکی بر سر مومیایی سان چطور ما اونجا سر رو بالا بیاریم کسی میتونه سرشو بالا بیاره مگر با این همه خطا و اشتباه و کوتاهی الله من و تو رو خلقت کرد برای عبادت و پرستش اما جلاله در قران میگه انا خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن برای در و انس بنا یه فردا ما جای عبادات چند درصد از زندگی برای شما عبادت چقدر الله رو پرستین چقدر در حرم بودیم و چقدر در هتلمون بودیم در, در زیر کریر نشستیم به خاطر سرویس نزیکیمونه به خاطر این نمیدم غذا دم دستیمونه چقدر همت کردین برای اون چیزی که براش آفریده شدی. احرام بسیل لا گفتی باید باش بشینی با عملت نه با مجرد یک سخن گفتن و با, با یک وردی به زبان آوردن نه دین به ادعا نیست دین به عمله الله جل و علا برای عبادتش دو تا شرط قرار میدهوننا رغبا و رهبا عبادت الله هست نمیپذیره اگر علاقه و حب درش نباشه دوست داشتن درش نباشه یدعوننا رغبا صفات بندگان الله اینه که الله رب با رغبت میل یعنی می با حب و علاقه دور خانه خدا بچق و حب و علاقه دوست داری بنده خدا باشی دوست داری بندگی تو رو برای الله ابراز بکنی حبه محبته ابراز محبته دوست دارم دوست دارم در خونه ای که مقدس قرار دادی برای الهه خونه که تو قرار دادی گناهانم کفاره بشه دورش بچرخم چرا نچرخم وقتی گناهانم کفاره میشه وقتی که ده تا درجه در بهشت با یک قدمم با یک قدمم ده تا گناهام پاک میشه ده تا حسنه به اضافه میشه ده تا درجه در بهشت الله ربان بالاتر میبره هم صحبت محمد مصطفی باشم ما اومدیم اینجا که بگیم باره اله از تو میخواهیم که همجوار محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام باشیم نه اون ته بهش بیوفتیم نه از الله جل و علا میخواهیم که هم صحبت اون صدیقین و شهده و صالحین اونها باشیم از الله شهادت بخواهیم از الله هم صحبتی و هم جواریه پیامبران و صدیقین بخواهیم انسان باید مطالبش عالی باشه خاصهاش باید بزرگ و بزرگ باشه الله رسول الله صلی اگر از الله خاصیت فرده اشرا بخواهیم هیچ وقت به اون اندکش راضی نشید الله درباره رحمتش بیکرانه شما اگر از بنده از،, از خلق از مخلوقات دارید میخواهید شما از الله می که بدون حساب میدهد پاداشش بی حسسابه پس بچرخ دور خانه الله با محبت و بچرخ با بی مترس و هررابارله ها اگر خودم دا رو خسته میکنم هزینه کردم آن پول و مال با این تن اومدم خودم در معرض خطر انداخنبارله ها محبت دارم دارم میچرخم در کنارش؟ یدعوننا رغبا و رهبا ترکنونش با ترس و حراسم باشه با بیمه من باشه بار الله دارم میترخم میترسم که اگر من بر بگردم دوباره به گناه و معصیت بعد بار رو سیاهی از دنیا برم بار الله من از خاتمه بد میترسم حس خاتمه به من بده این ترسی این بیمه تو باید بترسی بترسی از اینکه با بدی از دنیا بری و خاتمت بد بشه از این دنیا طواف که تمام شد الله اکبر که گفتی قبل از اینکه الا طوافمون دور اول تمام بشه از رکنی امانی رکنی که اون زاویه که قبل از زاویه حجر اسود سنتی که ما میگیم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقینا عذاب النار کلی درسات این دعا هست که الله جل و علا در قرآن بهمون توصیه میکنه در سوره انقر هیچ دعایی نداریم از رسول الله الله که در طوافش بکنه جز این دعا که سنت اینجا گفته بشه الله بعضیا میگن اینجا باید این دعا گفته بشه اونجا اون دعا اینها اجتهاد کردن اینطوری بعضیا اومدن مصلحت رو گفته ولی هیچ نیبادیه تو سنت صحیح ما نداریم فقط این ذکر و این دعا رو داریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه همون نیکی در این دنیا بده از اول فرزندان اصال. نیکی مطلق از الله میخواهی نیکی فقط در پول نیست دار. در بدیهیت نیست فرزندت نور چشمت نشه فرزندت فردا بیراهه بره تو زندان بیفته خاری گرفتاریه برادرت خواهرت هم اینطور. اینا همه روسیاییه. تو حسنه با خوبی مطلق را از الله بخواه بارلا. الله من از تو خوبی مطلق را میخوام در این دنیا رب نعتنا في دنیا حسنا این دنیا را برای ما بار خوبی مطلق قرار بده و في الاخرات حسنت و در آخرتم همین جز خوبی چیزی دیگر نبینید آتش از جهنم به تن من تو نخوره والله انسان فقط تصور بکنه خودش رو در صحنه محشر از اون ابتدایی که اون مجرم و تبهکار فرشتگان الله یقش رو میگیرن از اون قبر غل و زنجیر رو میکشن به گردنش و با سر و صورت بر زمین سرزمین محشر میکشن سبعون ذراعن فسلوکو ای فرشتگان بیای با اون زنجیرهایی که افتاد گزه فرشتگان کشان کشان میارن اونا رو میکشن اون تبهکان الله جل و علا ما از اونجا جمعه دسته امتبهکاران قرار نده که با زنجیر کشان کشان بکشنن در سه زمین محشر الله جل و علا ما را یک لحظه عذاب نده نه در قبرمون نه در سه زمین محشرمون که پنجاه هزار ساله نه یک روزه والله این من تو شست سال، افتاد سال، ست سال اوم میکنه میکنه که کیت تمام میشه اگر از بستگار من کسی ست ساله شد میکنه که میمیره نه اونجا دیگه یک روز یک سال و ده سال و سال نیست. اونجا پنجاه هزار ساله. به فکر اون باش چطور با تعامل میشه زیر سایه عمل خودتی زیر سایه سوره البقری که همچون ابری بر سرت سایه میاندازه به سوره البقره از فضیلتاشینه قرانه ما اون حدیث داریم دیگه سبعه یظلهم الله تحت ظله ذروه تحت ظل عرشه لا ظل ظله یکیشون امام عادله یکیشون دو نفری که لله دیگر رو دوست دارن اون ایمانشون بخاطر اون الله که در دل دلشون هم رو دوست از اونها کسانی که صدقه میدن دست چپش نمیدون دست راستی داده از اونها کسانی هستن که قلبشون معلق به مساجد معلق به مسجده تو در زیر سایه حمل خودتی اون نماز اون صدقه است اون قرانه محتاج والله محتاج اگر زیر اون سایه نباشی زیر چیم؟ زیر اون خورشیدی که برای فرده سر منو دوست ما رو در زیر قله زنجیر والله شما تصور بکنید الله جل و علا سوری الحاقه رو بخون. برو تفسیر رو بازو کن بالله این برنامه در موبال هست که راحت میتونی ترجمه قرآن و انواع تفسیر رو داشته باشید فقط برو سوری الحاقه رو ترجمهش بخوند از نوعی که تصویری که الله از اون سرزمین و از اون دنیا و اون عالم رو داره به ما نمایه سوری الواقع رو بخوند سوری الرحمن رو بخون. سوریه حدید را بخون الله چه تصفیری از اون صحنه، از اون عالم به ما میده الله جل و یاد میکنه در اون روز اون سختی اون روز اون کسی که اهل بهتان و غیبته الله جل و علا میگو یدهشت ناخونهای آهنی بدید اون ناخونای آهنی بر سر و صورت خودش میزنه. صورتش رو از اون بالا تا پایین، چشمش رو از کاسه در میاره. به سر صورت خودش می‌یوفته با اون ناخونای آهنی. راحت به نظر شما این تصویری که الله از این جهنمی ها رو داره؟ از نوع عقوبتی که میشن به خاطر اون غیبتشون، بخاطر اون دروغشون، به خاطر اون بهتانشون. به نظر شما آسونه؟ اون کسی که با دروغ کسب و کرده. به دروغ من این خرید والله این که سر قیمته. این نمی‌دونه فلانه، هزار تا دروغ گفته. مال حرام از لقمه حرام، از اون گلوش رفته پایین توقع دارید اونجا آب زمزم بهش بدن آب گوارا بهش بدن آب زلال بهش بدن والله اون آب اونجا حمینه چرک و خونابه جهنمیانه والله اونجا آب جوشانه وقتی که آب میتلبه از اون تشنگی و حرارت جهنم و اون جهنمی اون خار. آبی که براش میارن هنوز نرسیده به دستش چهرش پخته میشه بخارپس میشه از... چوش اون آب غذا میتلبه بهش میدن. خاره کارهای تل رو از تلخ و بدمزگی هست اون تلخ و بدمزگیش یه طرفش حزن نشدنش و اون برندگیش هم یه طرف دیگر وقتی که اون جهنمی میخوره دل رودهش خار پاره میشه نمیتونه تو گریز گیر میکنه میگه همین بهش بدید از اون آب جوشان از اون چرک و خونابه جهنمیان بهش بدید تا قورتش بده بتونه پایینش ببره این تکرار میشه بر سر اون جهنمی مگر جهنم راحته یک بار شما میتونید این کار رو تحمل بکنید بهتون بدن خار آغری و آب جوشان بگید بفرمایید اونجا دیگه مرد نیست میمیری دوباره زنده میشی میمیری زنده میشی روح از سنت جدا میشه دوباره اون روح به تنت میگرده این رو باید تکرار بکنیم اونجا دیگه سرای جاودانه است اینجا سرای دارفانیه اونجا باید بفکر اون لحظه باشی اون کسی که از نمازش میخوابید نماز جماعت شرکت نمی کرد. چرا و عذابی یاد شده براش رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرمایان اون کسی که از نمازش می‌خوابید اون روز روز رسوخی در جهنم الله جل و علا می او را بخوابانید بخوابونید بزاره تراسکش بشه دست پاش رو می‌گیرید فرشتگان دست پاش رو می‌گیرن فرشته ای رو الله دستور میده میگه سنگی را بردار بزن بر فرق سرش سرش له لورده بشه دوباره زنده بشه دوباره تکرار بشه این شخص است که در مقابل نمازش کوتاهی داشت سستی داشت به نماز بیدارد نمیشود شد. و ایده قامو الی قامو کسالا. با کسالت به نماز بیدارد میشد اینجا باید چنین بر فرق سرش بزنن با اون های جهنمی و با اون دستان پرشتگانی که الله مسخر کرده برای گناهکارانا بحث کفار نیست، بحث مشرکی نیست. بحث گناهکاران و تبهکارانه. پس انسان توافش باید با محبت و ترس و حراس باشه ترس و حراس از این نوع عذاب ها و شکنجه ها و دردهایی هایی که الله جل و علا گذاشته در, در روز آخرت. توافق هم تمون شوت بین پشت مقام ابراهیم اونجا هست که این آیه رو قسمتی از آیه رو تلاوت میکنیم میگیم واتخذو من مقام ابراهیم مصلا پشت مقام ابراهیم میسی ابراهیم اینجا اون مقام اون جایگاه اون جای پاش که می ایستاد خانه خدا را بنا میکرد الله جل و علا تکریمش میکنه جای پای ابراهیم رو نگه میداره برای چی جای پای ابراهیم رو نگه میداره چرا اسم ابراهیم رو اینجوری الله بلندو اینجوری الله جل و علا بنیکی اسمش رو حفظ میکنه همه می‌خواد خودشونو ابراهیمی جا بزنه اون یهودیش میگه من ابراهیمی هم. اون مسیحیش میگه من ابراهیمی هم. اون ام مشرک زمان و رسول استعاذ وجلش میگه من ابراهیمی ام ولی محمد مصطفی صلی الله علیه و که میگه نه هیچ کدومتون ابراهیمی نیستید ابراهیمی مسلمانه کسی که تسلیم امر الهیه درس تسلیمه درس تسلیمه درس تسلیم، ایستادنت و درودت نماز خوندنت اینی که به الله جل و علا بگی بار تو از ابراهیم خواستی که این خانه را تأسیس بکنه بنا بکنه تا این که ما دورش بچرخیم بپاس بپاس اون زحمات ابراهیم علیه السلام ما هم همچون ابراهیم بعد از توافمون اینجا درکت نماز بخونیم بار الله ها از ما بپذیر، از ما قبول کن درکت نمازت یعنی چی؟ یعنی شکر و سپاست که توفیق داد خونه خدا بچرخی و بعد از اون با شکر و سپاست بر سر نماز الحمد لله رب العالمین از الله قبولی عمل عملت رو بخه و اذی یرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و اذی یرفع ابراهیم القواعد من البيت بیاد داشته باش اون لحظه که ابراهیم سنگ رو برمی‌داش این خانه را بنا کرد بیاد داشته باش اینجا ابراهیم جای پای ابراهیم برات نگاهی داشتیم بیاد داشته باش ابراهیم با اون ابزاری که در دستش نبود با سختی اومد این خانه رو بنا کرد برای اینکه تو اینجا توبت پذیرفته بشه تو کفاره گناههات بشه تو محتاجی که اینجا بیستی ابراهیم با اون مقامش با اون جایگاهش از الله قبولی عملش رو میخواست این همه زحمت کشیده برای دین الله در آتش انداخته شده از سرزمین و کاشانش رانده شده اومده در یک سرزمینی که هیچکسی روش نیست زن و بچه‌ش اونجا رها کرده به پاسش تو هم اینجا باید بیستی ابراهیم اینجا ایسا تو هم باید بیستی و از الله بتلبی آن چیزی که ابراهیم حراس ازش داشت آن چیزی که ابراهیم از الله میخواست ربنا تقبل منا ع انت ان تصبیععلمیم بارله ها قبول بکن تو میشن و تو دانایی تو میدونی که من بار ها آمدم یا نه از دل اومدم تو بارله ها میدونی از دل من من از حولت رو نیاز دارم دورره خوند میتر خم یا نه یا بخد به خاطری که رییا بکنم فیلم می بینم دوربین آ نگاه بکنین خونه خدا ا طرف گذشته موبایل آه تو خاصت بگو اینجا من دللو بکنه خدای ای سادم. این چه کاریه میگه اینجا صحنه نمایشه بگه صحنه فیلمه اینجا آمدی بندگی الله را بکنید هم مقدمتون بارله ها قبول کن. بهت قبل من نکرد صمی وعلیم پشت نقام باهیم بعد از اون نمازی که خوندیم درکت میرییم به طرف سفا مبه به پاس حجر اون زن صور اون همسر پیغمبر بزرگ گووار اللهی ابرایم خلیل الررححمان خاجر عليه حسصلات والسلام. سلام مادر اسماعی بیادش میرییم بر روی کوی سفا میستیم این آیا را طلاات می کنیمیم ان صفحه والمروط من شاع الله. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما او يربكوني اونجا الله رب عزت ياد ميكنين مشركين بعد از بعزت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمارا من میکدن از اینکه حجشون رو انجام بدن 23 سال گذشت عزت از آن اسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بر روی کوه صفامی ایستاد میگیاد الله اكبر الله أكبر دیگر زت الله الله بزرگتر از همه چیز و همه الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده الله این ذکر صبر تکرار میکنی وسط این دو تا وسط این سه تا ذکرم دعا میکنید روبه قبله دست به دعا برمی دارید چون ناچه رسول الله صلی دعا کردن میرین بر روی کوه مرو همین طور می این ذکر رو میگی و دعا میکنید الله اکبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده ولا لا شريك له بعد که گفتی چی میگی لا اله الا الله وحده انجازه وحده بر الله اون بعدی که داده بودی بر نصرت ما مسلمان ها به بعدت عمل کردی بعد از 23 سال آوارگی هجرت از سرزمین حبشه به این و اونور بعد از این دربدری و کشته شدن این اصحاب و اون اصحاب در این جنگ ها در جنگ احود هموی رسول صلی اللہ حمزه شهید شد و دیگر اصحاب یاران نزدیک رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر بر رسول صلی علیه وسلم سخت بود بلیکن اطمینان و یقین داشت به وعده های الهی اینجا هست که رسول صلی علیه بر روی کوئی و می است و از این عزت یاد میکنه بار اله ها تو هستی که به وعدت عمل کردی اینجا ایستادیم این همون وعدته